وقت همه به بخیر امیدوارم حالتون خوب باشه من لیلا هادی هستم یکی از دانشوان استاد رافعه ادمان هاشمی تو زمینه مترجمی زبان عربی کمتر از یک سال هست ایشونو میشناسم البته خیلی گشته بودم که ایشونو پیدا کنم و از محصرشون دارم استفاده میکنم خواستم یه اتابقه جالبی که برام اومده برای شما به اشتراک بذارم یه مدتی بود من خب حس ناامنی تو خونم داشتم و شبا نمیتونستم بخوابم یه روز که سر کلاس بیحوسله بودم یعنی تمرکز نداشتم استاد رو برسن. گفتم استاد اینجوری خوابم نمیاد و یه حس خوفی توی خونمون هست نمیدونم در جریان هستید یا نه استاد اهل ارفانم هستن شاعرم که هستن حالا یه چیزایی به من گفتن و من او خوابیدم گفتن چیزی نیست نه ترس فلانه در مورد انسان حرف زدن در مورد بودهای دیگه این جهان و من خوابیدم شب خواب دیدم که استاد منزل ما تشریفه آوردن و دارن نماز میخونن به سمت اتاقی که من اونجا میخوابم و جالبه تو جایی که داشتن نماز میخونن خشک و خالی بود، نه موکت بود، نه فرش بود، نه جا نماز بود، نه مهر بود هیچی همجوری نماز میخوندم و من توی خواب داشتم که ایشون هی چیزی پاشون نیست. و خوابیدم و پا شدم و بعد که این خوابیدن یه حس آرامش عجیبی داشتم. و از فردا دیدم دیگه اون ترسه رو ندارم، اون خوفه رو ندارم و راحت خوابیدم. دیگه شب‌های بعدیش خواب خیلی آرومی داشتم، تجربه می‌کردم. بعد پرسیدم و اینو اینکه چیزه دیدم تبیر خوبی هم داره اینکه ایشون بدون جا نماز داشتن نماز میخوندن اینکه توی خونه من بودن اینکه هیچ فرشی زیر پاشون نبود اینا همه جزای خیلی خیلی خوبی بودن که هم به من مربوط میشدن هم به ذات پاک خود استاد ببینید دوستان من توی کلاسای استاد راف سوای اینکه زبان عربی رو خوب از بیست دارم یاد و بعد فهمیدم چیزهایی که قبلا یاد گرفته بودم اشتباه بود و الان خیلی دقیق تر دارم یاد میگیرم یه سری چیزهای ارفانیم معنویم از استاد دارم یاد میگیرم توصیم به همه دوستانی که میخوان تشریف بیارم تو کلاسای استاد رافه یا دل هستن که شرکت کنن شرکت نکنن ببینید بچه دوستان عزیز زودتر اقدام کنید ببین چون یه چیزی رو آدم امروز یاد بگیره بهتر از نیکی یه هفته بعد یاد بگیره یک ماه بعد یاد بگیره بحثم مسائل فقط درسی نیست ببین درس شما از کنار استاد خیلی فول خواهی. یاد خواهید گرفت چون استاد حس کنن شما یه مطلبی رو یاد نگرفتی سراغ مطلب بعدی نمیرن و هی تکرار و تمرین دارن هی مرور دارن و خیلی خوب مطالب و مسلط میشید توی مدت کوتاهی حالا خودتون باید یه ذره تلاش بکنید دیگه ولی خب کنار این مسائل یه سری مسائل عرفانی و بودهای دیگه جهان که هست این از استاد میتونید یاد بگیرید و بینشتون نسبت به زندگی تغییر میکنه دوستانی که بخوان از طریق من توی کلاسای استاد راپه شرکت کنن من یه کد تخفیفی دارم که حالا میتونم این کد تخفیف رو بدم به استاد و یه تخفیفی بگیرن نه از طریق سایت هستش همه اینا کد بنده هست ام ای ال اچ 9925 تکرار میکنم ام ای ال 99 25 این کد لیلا هادی هست شما میتونید از این کد استفاده کنید 10 درصد تخفیف شامل حالتون میشه و حالا وقتی وارد کلاس ها شدید خودتونم صاحب امتیاز میشید چه در زمینه کتاب چه در زمینه یادگیری و چه در مسائل دیگه به من عجله کنید فرصت رو از دست ندید و یه همچین استادی توی ایران من میتونم بگم کمیابه من خیلی گشتم ببینید من دو سال دنبال مربی میگم مربی ببخشید انقدر که گفتی مربی دنبال معلم دنبال استاد عربی خوب میگشتم و پیدا نمیشو برعکس اینکه تو زبان انگلیسی تو ایران اساتید خیلی خوب داریم و زیادن توی عربی خیلی کمه به عربی واقعا کمه چون من گشتم خیلی هم گشتم با اینی که من زبان عربی از لازه قواعد خوب رو ریشتمم یه جوری بود که بیس عربی خیلی داشته رشته دانشگاهیم معذرم اینه که استادای خوب کمیابند تو زبان عربی این فرصت رو از دست ندید و حتما توی کلاس شرکت کنید و برا منم یه دعا کنید وقتتون بخیر امیدوارم که این ویدیو من مفید باشه براتون خسته نباشید Thank you.